جهان های فلکی امشب رو دیر وقت آمد و لافاصله دیسکورس خود را آغاز نمود به نظر میآمد مشتاق صحبت کردن بود و به من گفت خورن پشت میز نشسته و میدادم را به دست بگیرم انگام گفتن در طول و عرض اتاق قدم میزد. بگذار از اینجا آغاز کنیم آن دست از اساتید اک که مکتشتین جهانهای فلکی بودند پیشتازان نوع بشر در رسیدن به ارتفاعات جهانهای درون می باشند. این بزرگان به ما فلسطه هایی را ارائه نمودند که بیاموزیم و در راستای آن زندگی کنیم ولیکن بیشتر آن به جای بکارگیری به نفع علت کیهانی نوع بشر در جهت منافع شخصی، تحریف و مورد سوء استفاده قرار گرفته است. مساعدت واقعی این پیشتازان در توضیح آن عقالیم عرفانی بوده است که فراسوی جهان زمینی قرار دارند. در سوی دیگر این اقلیم زمینی چه چیزی نهفته است؟ چند جهان در آنجا وجود دارد آنها کجا واقع شدند؟ و دانشمندان زمینی چقدر درباره آنها اطلاع دارند؟ دانشمندان آسمانها را از دید بیرونی می نگرند و از پوشش هوای دور این سیاره به منظور کمک به دانش نوع بشر در این جهان استفاده می کنند اما عارفین از درون آغاز کرده و همان طبقات را با چشم معنوی خود مورد بزرستی قرار می دهند دانشمندان میگویند پنج لایه از جو و اطراف زمین وجود دارد که روی یکدیگر قرار دارند و اینکه ما همچون بربرهای بدوی می باشیم که در ساحل اقیانوسی نشسته و در شگفتیم که آبهای آن تا چه فاصله فراسوی خورشید در حال غروب گسترده شده اند. آنها این نواحی یا لای ها را با نام های ترپ، ترپپاد استراتوسفر یونوسر و ناشناخته میخوانند عارفین آنها را به نامهای اسیری برماندا داسواندوار ماهاسونا و ساچخاند میشناسند فراسوی اینها طبقات دیگری نیز وجود دارند به نامهای الاخلوک آلایالوک و آگاملوک ولانتیستها آنها را طبقات اسیدی، ذهنی خرد رحمت و خدایی می‌خوانند تفاوت در اینجاست که وجه بیرونی این طبقات توسط دانشمندان فیزیکی و وجه درونی آنها توسط عارفین دیده می‌شوند و البته با این امتیاز که عارفین توانند به میل خود در کالبد معنوی خیش به هر مکانی در میان این جهانها رفت و آمد نمایند را با مقایسه بین این طبقات از دیدگاه فلاسفه ماتریالیست یا مادیگرا و بزرگان معنوی آغاز مینماییم ابتدا نوبت طبقه یا لایه ی تروپوسفر می میباشد که ما در جهان فیزیکی درون آن به سر میبریم و حدود 8 کیلومتر در قطبین و 15 کیلومتر در استوای زمین زخامت دارد این ناهیه است که در آن تغییرات هوا به سرعت انجام می شوند و تلاتوم زیادی در آن مشاهده می گردند لایه ای از طوفان در یک نقطه و آرامش در نقطه دیگر و همچنین اختلاف فاهشی که بین حرارت هوای قطبین و استوا وجود دارد لایه که حرارت آن به یک نوافت در ازای هر سیصد فوت یک درجه فارنهایت کاهش می آبد درصد وزن هوا، در این لایه متراکم شده است آرفین این لایه را طبقه سیری می نامند و به آن آندا می‌گویند که پایین‌ترین از طبقات آسمانی است بخش تحتانی این طبقه از ماده سقیل یا همان سیاره زمین و سایر سیارات مانند آن تشکیل یافته است در این ناحیه ماده سقیل جز معدودی از ذهنها و روح‌ها سایر مخلوقات و ابنای بشر تسلط دارد. این ناهی در برگیرنده تمامی خورشیدها و سیارات می باشد. چه آنهایی که دانشمندان میشناسند و چه آنهایی که هنوز توسط آنان شناسایی نشده باشند. این طبقه بی این که دانشمندان فیزیکی از آن مطلع باشند در فضایی خارج از دید هر گونه تلسکوپی گسترش می استادان دوباره و دوباره به این طبقه باز می‌گردند تا به مسائلت نوع بشر بپردازند. پای این جهان در بالاترین نقطه جهان اسیدی و در ناهیه ای که اغلب یا پاد خانده میشود قرار گرفته و به را حسرادال کانوال مشهور است که به معنای نیلوفر هزار برد میباشد همان مرکزی که یوگی ها به عنوان اکتصاب معنوی در طلب رسیدن به آن میباشند فرمان روای این ناحیه جات یا قدرت منفی است که خالق ماده و جهانهای تحتانی می باشد او در مرکز همان قدرتی جلوس می کند که نیلوفر هزار برگ نام دارند خوشه عظیمی از نورهایی که عارفین هنگام رسیدن به طبقه اسیری مشاهده می کند اینجا نیروگاه واقعی کیهان فیزیکی است و همان مرکزی است که دانشمندان سعی دارند بیاوند. آنها به دوگانگی اتم دست یافتند که از صافی معنوی خود جدا گشته تا قماش خشنتری را بسازد که دانشمندان فیزیکی به عنوان ماده تجربه می کنند. از این نیروگاه قدرتی جاری است که آفریده شده و اکنون تمامی جهانها را در کیهان بقا می‌بخشد. نورهای آن همه تیفا، رنگها و تای گوناگون را شامل می شفند. اما اساساً از هفت شعاع نور اصلی به رنگهای سیاه، قرمز، سبز، نارنجی، آبی، زرد و سفید تشکیل شده‌اند. این نورها به صورت جویبارهایی از نور به سراسر کیهان‌ها جاری می‌شوند. و هر یک صاحب جنبه های خاص خود به منظور کمک در ساختار زندگی فیزیکی در سیارات مختلف می باشند. مثلا سبز شعاع استقلال بخش است که نشانه رشد حیات در حاله آدمی می باشد. همانگونه که سایر شواه نیز حقیق زنده ای را در سراسر سر عالم مخلوق لمس می کنند. سیاه رنگ خالص وجه تاریکتر یا یا منفیز. در حالی که سفید برعکس آن است قرمز رنگ عشق انسانی است نارنجی شعاع حیات است که هندوها آن را فرانا می نامند آبی شعاع هوشمندی است که تمامی متفکران بزرگ و هنرمندان خالق آن را به صورت الهام دریافت می دارند. و زرد رنگ شعاع نور معنوی یا روحی می باشد به رنگی که افراد برای لباس خود انتخاب می کنند، توجه داشته باش. این انتخاب ها به نوعی نمایشگر شواهیم می باشند که مرحله اسیری آنان تسلط دارد. شهر بزرگ اسیری، ساحر دالکانوال، درست زیر یک کوه درخشان از نور قرار دارد. نام آن شهر نور نیز می باشد. در این شهر بسیاری از چهره‌های مشهور تمامی دوران تاریخ به سر می‌برند. آنجا خانه ی جات است که درون ای در دامن این کوه نور به سر می برند. همان مکانی که یک بار در سفری تو را به آنجا بردم. صوت یک در اینجا به صورت کورنا و زنگ کلیساست ناهیه اصیری قطب منفی تمامی کیهان های معنوی است. زندگی در این طبقه آنقدر طولانی است که ساکنینش میفندارند به جاودانگی دست یافتند. همه گی آنان به حرفه های خلاقه اشتغال دارند. این جهان اغلب پس از چندی میلیون سال برچیده می شود و در ادامه دورانی مساوی از تاریکی را طی می کند. پس دوباره آفرینش تازه ای آغاز می گردند و اما ناهیه دوم دانشمندان فکر می در اینجا کسی سکونت ندارد دیلافاصله بالای نخستین جهان آسمانی قرار گرفته است و آن را تورپوپاز می‌نامند. بنابر مشاهده چشمان فیزیکی این ناحیه لایه است که در آن درجه حرارت با بالاتر رفتن دیگر کاهش نمی‌یابد. این لایه تا صدها کیلومتر فراسوی زمین گسترده شده است و هنوز توسط دانشمندان فیزیک به خوبی اکتشاف نشده است. ناحیه دوم برهمندا نام دارد که به معنای تخم برهمند بوده و اشاره به آفریدگار برهمند دارد. این مقام خدایی توسط یوگی ها به عنوان مقام متعال شناسایی می شود این عملا بالاترین جهان است که تقریبا تمامی مذاهب جهان به این جمله اگر یک یوگی یا هرکس دیگری ادعای استادی کرده و به را بالاترین آفریدگاران به شمار آورده این جهان را نیز بهشت متعال قلم داد نماید معلوم می که خود بیش از جوینده ناچیزی نیست که تحت فرمان فرمان روای اعظم این ناحیه قرار دارد این جهان دومین بخش اعظم هستی است. سه جهان تحتانی، جهان فیزیکی، اَسیریه تهرانی و اَسیریه فوقانی، این ناحیه جهان‌های مادی معنوی است، زیرا روح الهی در این ناحیه عنصر مسلط میباشد. اینجا ناحیه ذهن کیهانی است که قدرت آن اُم یا عم نام دارد. این در واقع از نام امکار مجرای قدرت این جهان ها مشتق گردیده که خود هنوز در عالم تسلط نیروی منزی قرار دارد بخش تحتانی این ناحیه منزلگاه ذهن کیهانی نام دارد از اینجاست که ذهن فردی همگی ساکنین جهان های تحتانی مشتق شده و در راه بازگشت و عجب جهان های معنوی دوباره در همین ناحیه رها خواهد کرد سفیر تو را به فراسوی این جهان میبرد. زیرا تنها اوست که راهنما بوده و هم راه را میشناسد، هم فرمون روایان و ساکنین طبقات مختلف به او کرنش می نمایند انگامی که به دروازه این ناحیه می صدای اونکار کار شنیده می شود و مانند طبلهای عظیمی پژواک می نماین. ما به راه خود ادامه داده و از تپه و دروازه گشوده ای عبور می‌نماییم تا وارد یک تونل پیچ در پیچ شویم که ما را به سوی دیگر می‌رساند. سپس از تپه‌های بلند و کوتاه دیگری نیز عبور می‌کنیم. از این به بعد این چنین به نظر می آید که دید ما برعکس شده و گویی داریم به سوی عقب سفر می‌نماییم. از ناهی شبیه استحکامات میگذریم که منظرگاه فرمان روا امکار می باشد و توقف میکنیم تا روح به کفیات وقت و ایمان آراسته گردد در اینجا بذرهای کارمای مرید سوزانده و نابود می رنگ این چشمنداز مانند نور زیبای آفتاب در حال غروب می باشد. بالاتر از این ناهیه بخش دیگری از جهان امکار قرار دارد که در آنجا با بیابانها، کوهستانها و باغهایی مواجه خواهیم شد گلها به نهوی هنرمندانه آرایش داده شده و همه جا به چشم میخورند. از فرق شعف به حالت خلصه وارد میشویم و به گشت و گذار در این ناهیه باشکوه با کانالها و جویوارها پرداخته پس از روی پلی که بر فراز اقیانوسی کشیده شده است به سوی دیگر آن می رویم تا شاهد سه کوه بلند به نام مر سومر و کیلاش باشیم اینجا نقطه توقف روحگرایان و بسیاری از قرفای دیگر می باشند یوگی ها اینجا را به عنوان بهشت خود پردی رفته اند مجزات ذهنی از این ناهیه سرچشمه می‌گیرند. مثلا از اینجا می شود قطارها را در خط آهن متوقف نمود چاه های خشک را از آب سرشار کرد یا بیماران را شفا داد و اما ناهیه سوم دارشمندان فیزیکی این جهان را به نام استراتوسفر می شناسند که تا فرسنک ها در آسمان گسترده شده است در این ناحیه بادهای ملایم و مداومی جریان دارند و ابرهای زیبا زینسفخش آسمان میباشند. هنگام بالا رفتن، حرارت به طور دائم رو به افزایش میباشد. در این منطقه لایه اوزون واقع شده و فراسوی آن هوای فیزیکی اندکی قرار دارد. قرفای حقیقی این ناهیه را داس مینامند. می‌نامند. فضای این مرتبه آغشته از نوری درخشان است. روح در اینجا در دریاچه ای از شهر به نام منساروور بسل میکند و به قوهای ملحق میگردد که روحهایی میباشند مشهور به هانزا. روح در اینجا همه کالبت های خود را که شامل کالبدهای های فیزیکی اصیری و الی میشود رها میکند و تصویه می‌گردد. پروردگار این رام رامکار نام دارد او نیروگاه تأمین قدرت برای تمامی جهانهای تحتانی است در اینجا نور روح معادل درخشش دوازده خورشید می شود و شادی و شعفی که تجربه میکند فراسوی توضیح و تشریح فیزیکی میباشد. هنگام به سربردن در این طبقه آدمی قابلیت انجام موجزات عظیمی دارد مثل بینا کردن نابینایان، داهی زنده کردن مردگان و قدرت عبور و سفر در اتره هست در قالب کالبد فیزیکی شعاع نور نارنجی این جهان را تحت کنترل دارد. اینجا سرزمین هاست که در طبعی فیزیکی به پاراماهانزا مشهورند. بسیار معدودند کسانی که به فراسوی این اقلیم سفر می کنند. بازالک قدرت فهم آنان شگفت انگیز است. زیرا آنان بیشتر در جهانهای ماورای جهان خود به سر میبرند استاد تو را به بالاترین نقطه این طبقه میبرد و تو در آنجا صدایی همچون گروهی ویول نواز را خواهی شنید آنگاه از ای به نام تریبنی عبور میکنی که در آنجا سه جوی بار به یکدیگر دیگر جشن جشنه با که هر دوازده سال یکبار در هند برگزار میگذرد انکاسیست از بزرگ داشته این مکان در بهشت سوم. سپس روح وارد ناحیه ماهاتونا شده، در آنجا دانش تمامی جهان را برمیگیرد. با معیارهای زمینی، وسعت این ناحیه شوایی معادل فرسنگ ها دارد و در مرکز آن تاریکی محض برقرار است. چهار جریان صوتی از منچه نامعلومی در این منطقه شنیده شوند صدای جانکار بر اصوات دیگر برتری دارد و به زبان انسانی قابل طوضیح نمی باشد صدای شیرین آنها تو را مهد می سازد به طوری که استاد مجبور است تو را از افسون آن بیرون کشند همینطور پنج ناحیه یا مجموعه جهانهای تخم مرغی شکل دیده می شوند که هر یک تحت نفوذ و حکومت یک براهم قرار دارد بر هر یک از این مجموعه های کیهانی یک رنگ تسلط دارد مثل سبز، زرد یا سفید این مجتمع ها بسیار وسیع می باشند. به طوری که تمامی کیهانی که زیر پایست قرار دارد بسیار ناچیز مینماید هر کسی که به این ناهیه رسیده باشد صاحب قدرت و فهمی سواینده می گردن. ابعاد این ناحیه در قیاس با طبقاتی که پشت سر داشته ای قولاسا و بیپایان می نماید لکن هرچه بالاتر می صعوبت پیش و بیان مشاهدات هر آنچه به جهانهای بالاتر مربوط می شود نیز افزون می حتی تصور آن نواهی بالا فراسوی اندیشه آدمی قرار دارد. تا هنگامی که به دانها وارد شود و آنگاه نیز قادر نخواهد بود تجربیاتش را در غالب زبان انسانی درآورند. اکنون نوبست به ناهیه چهارم میرسد که دانشمندان آن را یونوسفر می‌نامند. هوای فیزیکی به قدری رقیق است که دائما شرایط حیجان الکتریکی بر ذرات اتم آن حاکم می گردد. در این شرایط است که این اتم‌ها را یون می‌نوازند. چندین لایه در این ناحیه وجود دارند که به عنوان انعکاس‌دهنده امواج ذهنی و رادیویی عمل می‌کنند. یک لایه امواج بلند را باز می‌تاباند و لایه‌های دیگر امواج کوتاه را. بعضی از امواج کوتاه نیست مستقیماً از میان آن عبور می‌کنند. امواج ذهنی و رادیویی همانند امواج نوری می باشند و در خط مستقیم سفر می کنند. اگر به خاطر انکاس انامواج در این لایه ها نبود انحلی کره زمین مانع میشد بتوانیم امواج ذهنی، روانی و پیام رادیویی را از یک سو به سوی دیگرش مخابره یا دریافت کنیم. این آینه الکتریکی در آسمان موجب می شود. این امواج دوباره به سوی زمین نکاسی یاند و در پهنه آسمان ناپدید نگردند خوری زمین مجددا آنها را به بالا می می‌دهد تا اینکه بالاخره در مقصد دریافت می‌کردند به همین ترتیب است که اگر آرزوی شدیدی را برای چیزی سرا فرستی از همین روند عبور کرده و در صورتی مجسم به سوی تو باز می‌گردند عارفان این ناحیه را طبقه چهارم یا سرزمین سوهنگ می‌نامند که نام فرمان ووای ارفانی این جهان می باشد و از طریق وی کل قدرت به جهانهای تحتانی جاری می گردد. این وجود الهی در شهری از نور دورخشان و از این به نام آرهریت به سر می برد. او آکنده از زیبایی و حیبتی شاهانه می باشد هنگامی که روح او را می بیند آگاهیش از شعفی تسخیر کننده پر می شود و با خود می گوید من آنم این معنای کلمه سوهنگ است در این لحظه از درک ماورایی خواهی دانست که با وجود متعال یکی هستی در وحدت هست با من استاد به همین علت است که ودانتیستها این طبقه را طبقه رحمت نامیدند به منظور رسیدن به این طبقه لازم است از معبری بر فراز تونل هانتنی عبور کرده وارد تونل روکمینی شویم. در این تونل ساختمان عجیب و زیبایی را مشاهده میکنید که در آن ارکان قدرت شنوایی و بینایی است به تو آرامش و خوشنودی می بخشن. سمت راست جزایری نورانی و در سمت چپ قاده های بیشماری پوشیده از قطرهایی میبینی که به نظر میرسد از مرواری ساخته شده و آنان آنان پوشیده از یاقوت هایی است که بر پایهایی از زمرد و الماس قرار گرفتند تنها با شجاعت ها می تواند تا بدین نواحی به, به ماجراجویی بپردازند. به همین علت است که پیش از این بارها گفتم فقط شجاعان ماجراجویان با ها و متحورین خدا را خواهند داشت نردوردست ها کوهستان های بهانوار گفا دیده می شود. صدای سوهنگ به وضوح شنیده می شود. این صوت مانند نوت زیر فلوت می باشد بالای سرط می درفت شد و این ناهیه را در نهایت زیبایی شیوینی و پر از نور خواهی یافت. روح هایی که در اینجا زندگی می کنند از جریان صوتی به مثابه خوراک تناول می کنند. و آن دسته از هانزاهایی که سعادت نفوذ به این طبقه را اند در طول خیابانها به همراه موردان خود در حرکت بوده کوشش میکنند به نواحی بالاتر دست که طبقات و جهانهای بیشماری با تنوع وسیعی از مخلوقات مسکون توسط میلیون‌ها ها در این طبقه با تغذیه از شهد نام زندگی میکنند طبی گفته است که در این ناحیه هشتار هزار قاره با خانه های زیبا و ساکرینی سعادتمند وجود دارد رنگ این ناهیه آبیست زیرا اغلب از آن به عنوان منزلگاه حقیقت یاد می شود اینجا طبقه معجزات است که در آن امکان اجابت هر اتفاقی میسر می باشد وای به روز کسی که از قدرت آن سوه استفاده کند دانشمندان ادعا می‌کنند که فراتوی این طبقه چهارم هیچ چیز وجود ندارد. آنها اعتراف می‌کنند که شاید چیزی در آنجا باشد اما تاکنون به کمک ابزار مادی خود نتوانستند نشانی از وجود چیزی را به ثبت برسانند در وجه معنوی بر سر راه رسیدن به ناحیه پنجم لایه آنچنان زخیم از تاریکی متراکم و عمیق خود فرماست که هیچ کس جز قدیسین نمی نمیتوانند از آن عبور نمایند فقط آن کس که در تصاهب نور و قدرت است ممکن است در این ره گذر گام بردارد و مریدان خود را نیز به همراه ببرد اکنون به دروازه ساش خاند، نزدیک می شود. در اینجا ساتنام و خداوند مطلق همه ی عوالم بالا و پایین به سر می درخشندگی او آنچنان مهیب است که حتی تابناکی یک مو از بدن او معادل مجموع نور میلیون خورشید خرشید می بود اینجا خانه حقیقی روح است مقرر سرفرماندهی کل آفرینش در این طبقه مستقر می باشد اینجا تغییر نافذیر کامل و فناناپذیر است بدان این طبقه را طبقه خدا می دامند. زوال و بازسازی این ناحیه را لنس نمی کنند. این جهان قدیسین و مکان سکنای آنان است ناهیه پنجم نقطه شروع حرکت روح به سوی جهانهای عظیم روح خالص می باشد و اهالی آن روح های تطهیر شده ای هستند که شمارشان قابل تخمین نیست و شوق و شعرقی آن چنان وسیع بر آن غالب است که درک آن امکان پذیر نیست در ناهیه پنجام محلی شبیه استحکامات وجود دارد که در پایتخت پروردگار جهانیان بنا شده است باید او را به عنوان پادشاه حقیقی به شناسی اکنون روح توسط استاد به پارک بزرگی هدایت می شود که چشمانداز آن توصیف ناپذیر است علاوه بر آن یک نهر عظیم نیز در اینجا وجود دارد که شبیه دریاچه های زمینی است و از آن ها از طریق کانال به عقص نقاط این ناهیه جاری می شود. کاخهای زرینی در مزارع باز و دنوری نوری نقعی رنگ بنا شدند چشمانداز فراسوی توصیف آدمیان است و زیبایی قدیسینی که در اینجا به سر میبرند درک ناپذیر است تابناکی هر یک از آنان معادل نور 16 خورشید و ماه به روی هم می‌باشند. اکنون به ورودی واقعی شهر رسیده این. نگهبانان دروازه قدیسینی هستند که ما را از میان دروازه عبور داده و به سوی کاخ پروردگار رهنمون می شوند. آنگاه خوش آمد ساتنام را دریافت می نماییم. اونو تجلی تجدیه معین و محدود مقام متعال است. او قدرت نور و جریان اصلی قدرتی است که از وی به پایین و به سوی تمامی عالم مخلوق چاریست. همچون جویبال عظیمی از آب همه نواحی را بیافریند بر آن حکومت کند و بدان دوام بخشد این جریان سوسیست جریان قابل شنیدن حیات که در تمامی منظومه ها و جهان های فلکی نفوذ می کند این قطب مثبت همه نواحی معنوی است بالاتر از ناحیه پنجم جهان وجود دارند که فراسوی توضیح و تشریح میباشند و آنانی که در آنجا به سر تحت فرمان مقام متعالی به نام سودماد می باشند که در واقع به عبارتی نیروی حیات است، نه وجود یا چیزی جز خود حیات قبعه خیالت از اعجاب و شگفتی هایی که فراسوی طبقه پنجم وجود دارد به استیسال در می افتد. آن راه که با ساتنام روبرومی شوی با خود می گویی من او هستم پیوند مقدسی است. که همه جهان‌ها را به یکدیگر می‌بندد فقط یک قدیس می‌تواند به این ناحی رسیده و عازم طبقات بالاتر گردد آنگاه او لقب پارامسانت را کسب می‌کند تمامی قدرت الهی که از نواحی بالاتر به پایین جاری است برای نخستین بار در قالب فتنام به صورت یک تجلی کامل پدید آمد و او نخستین تجسم شخصیت کامل مقام متعال می باشد. آن پدر اعظم و برای همگان مظهر نیایش، عشق و وقت کامل است او میان نور لایتناهی و کیهانهای مخلوق جلوس نموده و هر روحی که نوبتش فرا رسیده از ناخالصی ها شده باشد به آن به عنوان پدر متعال ملحق شده و درود فیض بخش وی را به همراه خوش آمد به خانه دریافت می دارد. تا زمانی که روح هنوز در نواهی تحتانی طبقه اصیری و جهانهای تحت حاکمیت براهم به سر میبرد همواره مشمول مرگ و تولد مکرر بازگشت به چرخی هشتاد و می باشد. اما هنگامی که به نواهی روح خالص ساسلوک آمد که نخستین طبقه فراسوی ساچخاند می باشد دیگر بازگشتی به زمین برایش الزامی ندارد مگر در قالب ناجی و شفاعت کننده روح خود به یک قدیس بدل می گردد تا جایی که به سفر در نواهی الهی مربوط می شود رسالت استاد او در خصوص وی به پایان می رسد هنوز روح می به زیباترین بخش سفرش مبادرت ورزد زیرا فراسوی ساچخاند هنوز سه طبقه از شکوه درک وجود دارند در اینجا خداوند جهان پنجام ساتنم مسئولیت راهنمایی روح را تا پایان سفرش عهدهدار می گردد روح با جوهر ساتنام وحدت حاصل می نماید و در صفات او صحیم می گردد آنگاه به توی سه طبقه باقی مانده آزم می گردد جهان بعدی الخلوک به فرمان روایی علخ و پس از آن آگاملوک به صدارت آگام قرار دارد معالم روح به پایان سفر خیش به ناحیه مقام بینام یا سوگماد می که آفریدگار متعال همه ی آن چه در قید هستیست می باشد هیچ کلامی قادر به بیان آن نیست هیچ اندیشهای نمی تواند آن را در برگیرد آن غیر شخصی و اقیانوس بی از عشق خالص است آن بی است و بر همه چیز محیط از آن است که تمامی حیات معنویت حقیقت و واقعیت نشأت میگرد. آن ناهیه عشق حکمت و قدرت است تمامی پرورداران مرعی تمامی نواهی تجلیهای آن هستند آن ش های بیشماری به خود میگیرد تا مقصود خویش را در تمامی عالم مخلوق اجابت نماید. این شکل ها همه اشکال وی می باشند، اما هیچ از آنها قادر نیست تمامیت آن را به بی بیان درآورد. ممکن است میلیونها شکل به خود برگیرد اما خودش همچنان مبرا از شکل باقی است غیر شخصی است و در همه چیز نفوذ دارد آن روح کیهانی و نور کیهانی است انگامی که روح به دینجا می رفت آن چنان در شوق و شعف قرقه می گردد و در شکوه وی گم می شود که در یک آن به بیهودگی تلاش در توضیح آن خیلی برد